بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد نوادو فانجمين بيتز أبيوت تائيه البيري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت خب الآن إن أبو بكر متفاوته بأن أبو بكر قابلي ونجو غنواحكار خطاكار ولی اینجا وانت الان لم تعرف بعيد تو اصلا به اي بشناخته نميشي اصلا ولدا نسته وب لباس خودت را منظور دين ایمانشه آلوده نكردي ولدا نسته وب مذ نشاتا منظور لباس نيست ولدا نسته وب منظور جامعه قلبه منظور اون دين ایمانشه يعني تو اهل طاعت و اهل عبادت بودي مذ نشاتا از اون وقتي كه نشات يافتي ولی که ان چرا الان عوض شدی هرچند که حالا شایدم وجتاری زینه باشه که بعضی این ارا دورو گرفتن که گفتن که که مختلفی رو داره اینجا مطرح میکنه و میخواد اون عیب رو درمان بکنه فکر نکنم حالا تآروزی باشه چون اینجا بحث بچگی ش و جوانی میکنه و انت الان لم تعرف بعیب ولا دنس ثوبك مذ نشات از موقعی که نشات یافتی الان بد شدی ما قبل اینی، یعنی ما قبل الان خوب بودی. تو خود عالوده نکردی با جنahan کبیرای با، همور زش، همور زنده و نالایق. ولا سابقت في ميدان زور ولا او ضاعت فيه ولا خببت ولا سابقت في ميدان زور سابقت؟ و سابقات. السبقاتي در ميدان دروغ در ميدان غلغيش و جنahan معسيات در اون ميدان تو نبودی. در اون عرستو نبودی جات نماز و مسجد بود طهات و عبادت بود ولا سببقت في ميدان الزور ولا اوضعت فيه ولا خببت ولا اوضعت يعني تو نمي شتافتي در اون ميدان معصيت و نهم نشتاب ميرفتي و نهم عائسه جات اونجا نبود ولا خببت اصل تخبيب نوعي يا سيره او السهس يعني نه تو عائسه و نمشتاوان مسيرت مسير گناه نبود جات جایی که گناه باشه نبود جای اهل علم جای گناه و معصیت نیست فان لم تنء عنه نشبت فيه و بالخلاص اذا نشبت فان لم تنء عنه اسباب تذکر یادوری داره بهش میگه اگر از اون میدان دور نشی کلا تو شفتادی میدان گناه و معصیت الان تو شفتادی تا اله پاک بودی ولی که الان خراب شد اگر ازش پرهیز نکنی دور نشی نشبت گرفتارش میشی ومن لك بالخلاص اذا نشبت ومن لك بالخلاص كياس قلوب از اين آلودگي از اين گرفتاري تو رو بيرون ميکشه ومن لك زمانت ميگي ك بيرون مياي از اون لجني كه تو شرفتي الله واسكنه فسيح جناته غير كتاب آداب و شرعيه ازش مفلح ناخل ميکونه ابن مفلح در آداب الشرعيه از امام احمد ميگي ك امام مثال ميزنه ميگي ديري لجني گل لاي لبه دریا توی باران آبی جمع شده میخوای ازش رد بشی کفش قشنگی هم پوشیدی اول این کاری که میکنی چه کار میکنی کفش و دمپای بیرون میاری زیر بغل درست پاچه شلوارم میزنی بالا درسته رفتی توی اون لجن یا توی اون گل پاد رفتوش این طرف پیرهنت خورد جلوتر رفتی این پیرهنت خورد پاد رفت با این طرف. دیگه شلوارت دیگه بالاتر از اون دیگه نمیتونی بکشی پیرهنت شد گلی اونجایی که گِل چاپو راست لباست گرفت نمیگی حالا که ولش حالا که کسیف شد حالا که برهتره کسیف شده گلی شد که شد دیوید وقتی که بارو میاد سل میاد تو وسط بارندگی مثلا جاهای آب میسه طرف با ماشین داره میبینه ماشین جلویی ایستاده حالا ما هم گیر کردیم نکردیم برو شاید برای خودت نه پیش اومده باشه انسان ها یک لجی دارن ولی ای کاش این لجه در گناه و معصیت نباشه در طاعت و عبادت باشه لرج بکنه من دیگه نماز صبح نمیشه ای کاش اینطوری بود لجش تو گناه تو معصیت تو ریسک و تو جان خود به خطر انداختن و دنیا و ریسکش تو ایناست ولی که ولجش ولی که تو عبادت و طاعت نه سسته تمبله امام احمد میگه رحمه الله اسکنه و جناته میگه گناه و معصیت هم همینطوره کسی که آغشته به گناه شد این بر لباسش گلی افتاد این بر گلی افتاد بعد میگه ولش که آلا که کسیف شدم وقتی که معصیت و گناه برات عادی شد وقتی که در موبایل باز کردی این زن برهنه رو دیدی این ترانه رو گوش دادی برات زنا میشه آب خوردن شیطان که نمیاد بگه بیاد بگه بیا بفرما توی طالب علم عالم بیا زنا بکن نه شیطان از اون در آخری شروع نمیکنه اول از ابتدا از کوچیک شروع میکنه اول بیا برات یک طعمه میذاره یک زنی یک دختری یک خلوتی جای به بهانه مکتبخانه، جای به بهانه درس دینی از اون نگاه شروع میشه از اون لبخنده و و صحبت تلفنی و پیام واتساپی و بعد تماس تلفنی و بعد درد و دل و بعد تخریب میشی آبروت میره حیثیتت میره و برات اون بی ابرویی اصلا عادی میشه با کمال بی ابرویی میای تریپودم به دست میگیری برای مردمم صحبت بکنی برات عادی شده انسان وقتی که میره پیش دکتری میگه یا بیمارستان سری میشه که پرستان نمیاد بالا سر انسان بگه حرف نمیزنی میگه فنا نیست بهانه ام برات میتراجه اما محمد میگه برحذر باشید از گناه و از مدعاتش. از همون قطره اولش از همون لکه اولش اون لکه که افتاد یکی دوتا شد دیگه میره با آتون. دیگه میره با هاتون میره براتون عادی میشه سلمان عوده من مثال بهتون میزنم شاگرد محمد خود محمد خود برم شاگرد برادر سید خود یک مدرسه تکفیری انتقالی آفته از مثب عربستان این شاگردان ابتدای سالهای 90 میلادی سالهای افتاد شمسی و 1410 قمری ابتدا شد حافظ قرآن شرح بلوغ المرام ابتدا خوب بود جنگی میشه بعد از انتهای جنگ ایران و عراق عراق حمله میکنه به کویت عربستان میاد از کویت دفاع بکنه صدام میزنه بمباران میکنه عربستان عربستان کم میاره از امریکا کمک بی به باز میگه امشکال نیست سلمان عوده و سفر حوالی سران فکر تکفیری در اون دوره عمر از زمان بودن برای سر منبر میسن فتواهای جهاد میدن بر علی حکومت عربستان ابن باز و بن عثمین که جزء کبار بودن و ابن باز هم مفتی اون عربستان بود نامه می خطاب به ملک فهد پادشوه عربستان که اینها لیاقت منبر را ندارن اینها شر و فسادن با زندان بشن شرشون باد کم بشه آلوده شدن به فکر تکفیری حاکم خودشون تکفیر کردن و خروج بر علیه اون حاکم هم تجویز کردن که چرا استعانت از کافر جسته و استعانت از کافر جستن چیه؟ تولیه و موالات کفاره و موالات کفارم کفر اکبره بائل اخر ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون نسخي پیچیده شده توسط سید قطب محمد قطب در تکفیر بعض قب استادشون زل خویسرای تیوی اینجا داستان تمام نشد جنگ تمام میشه جنگ میخوابه اینها هم از آزاد میشن سلمان عوده عمامه را برمی داره میاد با جوونا به تحسیس انجامن های خیریه و صدق جمع کردن و کلاس های حفظ و قرآن زدن و الى آخر و برای اینکه قدرت بگیرن اومدن به قطر اونجا پایگاه زدن و نمیخوام الان کل اون داستان و جریانی که تو این مدت سی سال گذشت اینجا مطرح بکنه از سال 92 میلادی تا سال الانی که سی سال گذشته از اون واقعه سی سال گذشت الان سخنگوی سلمان عوده که پسرش عبدالله عوده کجاست؟ تو آمریکا؟ اگر میخواهی بدونی که بر سر سلمان عوده چی گذشت چی شد تیریپونه فقط بزن تو یوتیوب بزن عبدالله العوده چه تغییری در این ایجاد شد؟ یک فکر بدعی تکفیری تبدیل شد به یک فکر لیبرالی علمانیه بیدینی یعنی چی؟ یعنی ها بیدین شدن؟ نه سکولار شدن یعنی چی؟ یعنی دفاع از هم جنس بازان، هم مثلی ها که میگن با اون پرچم این کمانش. یک مثالی بودا. از یک شخصیت تکفیری تبدیل شدن به یک چی؟ به یک فکر جدید دیگری کفری اللحادی از اون بدعت به دفاع از کفر الحاد و زندقه و دفاع از هم جنس بازی که الحاد این زنده است کفر محزه. اونجا به اسم دفاع از دین بود ولی که اینجا تبدیل شدن به ضد دین دین عمل قوملوط را. سخت باش برخورد کرده ی آسون سخت تا جایی که در شرع داریم اگر کسی این عمل را انجام داد فاعل و مفعول را از بالاترین جا پرد بکنید که له و لبرده بشه حکم شرع له بشه مثل قوم لوتی که بر سرشون بر دیار رو کاشانهشون وارونه شدن بعد له بشه ولی که اینها نکنید از اون شخصیت تکفیری تبدیل شدن به یک شخصیت سکولار که با دین و دینداری مخالفن و تحکیم دین مخالفه. آلوده شد دیگه پیراهنت کثف شد حالا که رفته بزار بره حالا که رفته بزار بره. اگر ما تذکر میدیدیم یاداوری می کنیمیم ولهی نه کسی به من پول داده نه خصومتی با کسی داریم از ما سوزی دلسوزی میگییم اگر یه کسی مشکل اعتقادی داشت ما بایدس پرهیز بکنیم بد آلوده شدیم این آلودگی ها کم کم کم کم ما را در بر می گیره اگر ما را در برن از اون آلودگی دفاع میکنیم. اگر ما عمل قوملوت انجام ندیم مثل این مثل سلمان عوده می از همجس بازان دفاع می کنیم سنگ قوملوت را به سینه می ناقبت تهاون دیگه عدم غیرت در مقابل دین به دت رو کم نشمر مر و اشربو فی قلوبهم العجله بی کفرهم رفته امریکا نشسته با دموکرات ها و ضد دین ها نشسته توقع دارید که فارغ تحصیل دانشگاه های امریکا چی بشه؟ توجه فکریش چی باشه؟ یکی که انسان در دینش با کسی نباد شوخی داشته باشه. ابتدای درسمون چی بود؟ گفته ابن سیرین هذا علم دینون فانظروا عم من تاخذون دینكم. این علم دینه. از هر کسی نگیرید، دگاه کنید، از کی دارید میگیرید؟ کسی اگر عقیدهش اهل سنت نیست ازش نگیرید. یا کسی که حتی در مقابل غیر اهل سنت کوتاه اومده از اون ولا براش کوتاه اومده عقب کشیده، پس کشیده تو هم از اونم بر باش. آلوده میشی به اون آلودگی اون. اون محبت اهل بدعت یا اهل معصیت رو داره، تو هم اگر ازش دفاع بکنی فردا هم, تو هم مثل اون میشی. اگر اون داره الان از سید خود دفاع میکنه، فردا تو هم میشی وکیل مدافع سید خود. داشتیم افرادی که تو جمع ما بودن اسم سید خود میم... میگفتن، خدا لعنتش بکنه. چرا میگم لعنتش بکنه؟ لعنتش نکن. میگفت که نه. گفته عثمان ابن عفان دوسته اختلاس کرده بیت المال برداشته غلط کرده ملعونه برادر دوست رفیق، آیا علما کسی بوده که او رو لعنت بکنه آیا اجازه داری این لعنت خاص را بکنی برو نگاه کن به البانی برو نگاه کن به باز ابن عتمین. نمیگم در حکم گمراهی شک دارم ولی که لعنتی ایک مسئله دیگه است. همون شخص الان شده وکیل مدافع سخت سید خود نه سید خود که توبه کرده سید خود که برگشته برادر کتابا همونه عوض نشده چاپش همونه همون داره چاپ میشه نه توبه کرده کجاست توبهش؟ این تفسیر فی این کتاب معالمش و عشر بو فی قلوب همول هجله به حب اون اشخاص به دلش نشسته به بخ... قاطر نشست و برخواست آلودگی رو کم Now another another. Get your body full, Then you are not using it in the face of your eyes stop Desde the obvious birth, you see that the Saint looked ults No more yet in the arena you were able to come to every day you had no hurt book or with the sins不 reals or you had a motto of executor How محتاج یک دعوتگر خودت رو ببینی کتاب‌های آلوانی رو خوندی و ابن عثیمینش و قبل از اونها ابن حجر و غیر و مبارک فوری و اینا رو خوندی که دیگه لا چسبیدی به چهار مقاله و داستانی که و چهار تا و چهار تا کلیپی یک دقیقه‌ای و دو دقیقه‌ای یک دعایی علم فراتر از این ای برادر برو اقاصت الله فار رو بخون برو کتاب داو و دوا رو بخون تو مریضی نیاز به داو تطهر منك تدنس كثيفش داري ميکنه اون چيزي كه اصلو پاک بود حتا كه انك قبل ذلك ما طهرته انقد كه اون كثيف كه ادي الوده كه ادي انكه قبل از اون پاک نبودي اصلا اصلن بيرانت پاک نبود دل قلبت اصلا قبلا ظاهرا پاک نبوده وقتي ميبيني يك شخص يهو عوض ميشه ميگي اصلا اين كسي ديگه قبلي يكسي ديگه بود الان كسي ديگه است الان قلب فور از كينه كدورت بنباس كيه الباني كيه ابن عثيمين كيه اینا که مدخلین اینا که جامیان اینا که مرجعیان تو که تا دیروز میگفتی علم رو از کجا بیاموزم چه کتابی بخونم الان چی شده عوض شدی چی تو رو عوض کرده یک سخنرانی یک نشست و برخواست انی لك ناصح امین شعار ابلیس بود و شعار ابلیس صفتان همچنان هستن فکر نکنید ابلیس تو بهش فقط مقصدش آدم بود علیه الصلاه و السلام و حوا همچنان ما مقصد ابلیس و ابلیس صفتان هستیم. مثل اون معتادی که میان اینقدر تعریف میکنه از اون بنگ و تریاک و اون حشیشی که میکشه اینقدر حس حال بهت میده و اینقدر دلداریت میده و تو به سینه میزنه که تو شیفتی میشی یه پیک هم من بزنم اعتیاد از کجا به وجود بیاد فکر کردید؟ از دلسوزی معتاد به اون بدبخت فقیر حقیر که به دامش میفته و اینم معتاده میشه ناصح و امین حالا یه پیک بزن هیچ چی نمیشه وصرت اسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد اسرت وصرت اسير ذنبك هل انت اسير اون گناه شديد معتاد شديد الوده شديد گناه اولك ابتدائيه كارش دل جرعت ميخادا یک بار فقط تون تو گل برو دي برات عادي مشي تون لجن كرفتي دي تمون اون دختر بی حیایشمون یک بار مو بیرون کردنه یک بار فقط موشو بیرون کنه تموم شد رفت ریخت مادرم همیشه میگه میگه حیای یک است اگر ریخت روی زمین جمع نمیشه یک بار کافیه میگه دختره موهاشو بیرون کنه بس یک بار ریخت جمع شدنی نیست تو دیگه نمیتونی حجاب سرش کنی اسیری گناه میشی گناه را عادی نشور بصرت اسیرا ذنبك فی وثاق فی وثاق بس شدی دیگه دستپاد میبنده اون گناه و كيف لك الفكاك وقد اسرت؟ الانتو اسير دست صفات بسته شده. کی میخواد تو فكاك کنه، نجات بده، آزادت بکنه؟ رای بر فكاك آزادی هست مگه؟ گناه بس انسانو اسیر میکنه. وقتی گناه گفتی میشه دیگه، همه بدعت، شرک، کفر همه شامل میشه. نفاق، دروغ تو یک بار بود. به خود اجازه بده غیبت بکنی، تهمت بزنی، فرق نداره. جرأت به خود دادی گناه رو انجام بدی، حیات ریخته پررو میشی. تا صفات دیگه بسته میشه تو اون زندان فقط خوشی خودت را لذت خودت را در اون گناه معصیت میبینی نمیتونی خوشی دیگری را تصورش داشته باشی دلت به قرآن خوش نمیشه نمیشه در قلب مؤمن موسیقی، آهنگ، نگاه نامحرم با قرآن جنب بشه نمیشه قال عین و تزنی و زنا اله نظر زنای چش نگاهه زنای گوش شنیدنه تو داری زنا میکنی معصیت کبیره ای داری انجام میدی کلی تو قلبت داره میریزی نقطه نقطه سیات تو قلبت داره ایجاد میشه بعد چطور میخوای حافظ قرآن بشی و کلام الله را درک بکنی و بفهمی مگه میشه نمیشه جنب با هم دیگر نمیشه تو یک قلب گناه و معصیت و طاعت و عبادت مثال زلیخا رو زدم دیگه وقتی که شنید پشت سرش حرف زدن مگه دست کشید وقتی شنید و قال نسبتون فی المدینه امراه العزیز تراود فتاه عن نفس مگه دست کشید گفتن زنا در دربار در شهر زلیخا اومده زنا بکنه با بردش زلیخا به تبعش برمیخوره پشت سر من این حرفو زدید الا ببینم شما این کار میکنید یا نمی کنید با میکنم یا نه رو جام کرد چاقور رو آورد یوسف که وارد شد گفت که چی همه راضی شدن که یوسف با اونها هم زنا بکنه یک زن یک میوه خراب سیب خراب بقیه رو همه خراب کرد حالا شاید این لفظ درست نباشه ولی یک زن با اون فسق و فجورش زلیخا زنانی که در دربار بود روی اونها تاثیر گذاش خودش بی حیا بود در اون تقاضای زنا از یوسف اومد زنای دیگر رو اقوا کرد اونها رو فاسد کرد اونها اومدن از یوسف تقاضای زنا کردن اگر حرف ما رو گوش ندی زندانت میکنیم همه گفتن دست یکی شدن کل زنا بر علیه کی یوسف فساد رو کم نگیر یک فاسده بقیه رو فاسد میکنه سامری یه نفر بود اصلا میاد بحثش بخیر را فاسد کرد کسی که فکرش خرابه اطمینان و اعتماد بهش نکن كيف اهل الغنا ومعصيته بيش اعتمد نكون ترى خراب ميكونه الوده ميكونه اگر ما تحذير مديم گاهي يا هشدار مديم از بابينه دل سوز خودتي بچس بوني كه ترى الوده نميكونه بچس بالباني برايت كي چيزي بد مگه در اماني از اين كه منحرف بشي يا مبتدع بشي اگر عقيدت را از اينو گرفتي فخف ابنا جنسك وخش منهم كما تخشى الدراغمه وسبنت فخف ابناء جنسك بترس خسنت مني جنس از هم جنس خدت از انسان ها و دوست رفيقانك دور بلتا فخف ابناء جنسك وخش منهم بترس از انها همون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمايا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل المرء على دين خليله هر کسی بان کسی که دوسش داره نگاو کونید وکی دوس مشید فلينظر احدكم من يخالل <تصفح> نه، الان این تکفیری که ما میدونیم تأکفیری، ولی خون تأکفیرش ازش خوبی ها که داره شرح بخاری مسلم داره شرح فلانی، داره این کتاب اون کتاب داره، سیرت داره. عبدالرحمن رحمان ملجم مولجا میشناسید حافظ القرآن. والی از ولاتی که ما اون خطاب به مصر میفرسته عبدالله رحمان ملجم مولجا ما اون خطاب او را می‌فرسته. بنوان یکی از ولات والیان به مصر. ولی که یک دختری، میشه از دختران خارجی شیفتش میشه. خواستگارش میکنه میگه میخواد با ازدواج کنم نظرت درباره علی بن نبی طالب چیه؟ بعد از خلافت عمر مخطط علی بن نبی طالب خلیفه هست گفت که نه کافره اینقدر اون زن توی گوش یبد الرحمن اونو ملجم میخونه تا آخر رازیش میکنه که خون علی بن نبی طالب را بریزه یک زن یک دختر اینقدر به خود اعتماد نداشته باش مغرور نشد اگر میدونی این فکر خارجی داره اگر میدونی؟ اون شخص منحرف انحراف داره فخف ابنا اجنسی بترس از این نوع انسان ها وخش من هم بترس بترس بر دین خودت شاید تو رو آلوده بکنه کما تخشه الدراغم همون که از شیر میترس، از پلنگ میترسی وسبنت منظورش پلنگه همون که از شیر و ببر و پلنگ میترسی بترس از این درندگانی که تیریپون به دست گرفتن تو فضای مجازی کی لپ از اونها نش همینو بهتره همینا ترسید میکنن آلودت میکنن تنبل نباش برو کتابای ابن قیم والله غنی از علمه والله تو محتاج یک دقیقه نیستی تنبل نموش برو بخون کتاب حداقل ابن قیم رو سنگش به سینه بزن دوست داشته باش نه اینکه اینجا اگر اسمی اووردین گفتیم ابواسحاق حوینی به تبعت بر بخوره که مدخلی اومده اینجا از علماء هشدار میده و بدگویی علما میکنه نه والله من اینجا نمیذارم که وقت خودم تلف بکنم با غیبت این اون ما نیازیم در علم دینمون از یک شخصی که راه کجی رو را برای خودش انتخاب کرده راهش کجی ما محتاجش نیستیم فقط همین میگیم این راه راه اهل سنت نیست دلیل یک دو سه دفاعش از سید خود دفاعش از تکفیری ها و الی آخر برید تو یوتیوب بگردید و ببینید راه کجی انتخاب کرده مجبوریم مشدار بدیم این راه کجی تا اینکه شما بی بیراه نرید بدونید خیر و شر خودتون خیر و خوبی تو اگر رفتید کتاب بریقه ام خوندید من میگم یا, یا کسی بهت میگه چرا کتاب ابن خیام خوندی؟ و هم همون سوویی بهت نمیگه چرا کتاب ابن خیام خوندی؟ پرو بخون طالب علمی نجو عربی بلد نیست نجو نمیتونم راه تلاب نباش یاد بگیر اسمانو من عفان رضی الله عنه میگه ودته زانیاتو لوزن النساء و جمع زناکار اون زنا فاحشه دوست داره همه زنا فاحشه بشن تا کسی نگه که چرا این کار هستی؟ اون تکفیری دوست دارم تا تو تکفیری باشی تا کسی دیگه نقدشون نکنه اهل بدعت جنین هن دنبال تفسیر سوادن دنبال اینا که جمعشون پر رنگ بشه و خالط هم وزایل هم حذارا و کن کسامری اذا لمستا و خالط هم اگر نتونسی پرهیز بکنی ابتدا با اینا نشی نصیحت اولیش حالا مجبور شده بشینی جایی که نمیتونی الا این باشون نشست برقاست داشته باشه و خالط هم حالا مخالطه بکن اگر مجبور شدی و زایل هم مفارقه، از ما فارقت از ما بایه نهست ولی که یعنی برحذر باش اگر مجبورش تو جمعشون باشی برحذر باش حذار برحذر باش چطور برحذر باش و کن کالسامری اذا لمست سامری موساد دعای نش میکنه تنابیش الله در قرآن میگه در سورتها فذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مصاس مفسرین تفسیر این آیه میگن که موساد علیه السلام میگه قال فذهب فان لکه في الحياة برو در این دنیا تا جایی که مردم بهت بگن نزدیک ما نشو دست ما بهت نخوره و خودش هم میگفت کسی دست من نزنه اگر زد تب میگیره میمیره لامساس کسی دستم نگیره میمیری اگر دست زدی به من میمیری مریضی گرفت که کسی نمیتونست نزدیکش بشه خودش مریض همه هم میدونستن و همه هم ازش پرهیز میکردن دور مینشستن میگه اگر مجبور شدی اگر مجبور شدی که از مبتدع گمراه بیاموزی سخت پرهیز داشته باش مثل پرهیز مردم از سامری که اگر دستت بهش بخوره تب بگیری بمیری به ترس بر دینت نه تنها مبتدی، حتی آن گناهکارو و حاسیش تا در تو تأثیر نذاره اون گناه را در دل تو کمرنگ نکنه کمرنگ جلوه نده به ترس از فساد به ترس از مصیبت و گناه و این جهلو علیک فقل سلام سلام لعلک سوف تسلم انفعلته و این جهلو علیک هر اومدن بدگویی کردن با سب با شت و این جهلو علیک از تحذیر هشدار دادن این مدخلی، این تندرو این هر چی بود هر لقبی بهت دادن و این علیک با هر نوع بدگویی و سب و دشنامی و این جهلو علیک فقل سلام فقل سلام من کاری به شما ندارم سلام لعلکسوف تسلم و انفعلت تا اینکه با این اعرازت روی گردانید دنید سلام بکنید که باشو نشید اگر دیدی کسی سبد میکنه یا بدیت میگه یا بدی اعتقادت میگه سلام علیکی کن و روی بگردن و ازش فاصله بگیر فقل سلام لعلك سوف تسلم فعل تا اینکه در امان باشی از نشون شون و اعرض عن الجاهلی اعراض کن از جهال لازم نیست که برخورد بکنی لازم نیست که رو دروشون بییسی مثل اخو العشیره این فرد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم از زبان بدش در امان نبودن انسان ی بد دهنه بد و منن عشر رجالن که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام میگه این فرد بده یه اون شخصی همون شخصی اومد همون کسی که قبل از ورودش گفته بود بسعق العشیر اون فرد فرد بدیه همون انسان بد دهنه اومد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام بلند شد آغوشش گرفت و لبخندی بهش زد منن عشر رجالن ها تعجب میکنن میگه که تو که هشدار دادی تحذیر لبخند زدی گفت که تا مردم از شرش کسی که صاحب شره میدونی شره با لبخندی از کنارش ردشو غبور کن دهن به دهنش نشو دهن به دهنش نشو دعوه ده و جری راه ننداز زور او شاید از تو بیشتر باشه وقتی که تو مغلوبی تکتنایی دهن به دهنش نشو و این جهل علیکه فقل سلام لعلکسو فتسلم و انفعلتات اینکه در امان باشی و من لکه بسلامت فی زمان و من لکه بسلامت فی زمان تنالو ع عصمت وابي شوشان ينالوا العصمة إلا إن عصمت ومن لك بالسلام في زمان شو جنبي مثلي در أمام باشي در زمانك بوراس فتنهاس ومن لك بالسلام ترمي الشالين باقي في زمان در زمانك تناالوا العصمة إلا إن عصمت إن يكفاش أبى تنال تناالوا العصمة عص جامعة عصمة, جامع عصمة كهمن ضبيه همن بوزك الا ان عصمته ومن لك في زمان دار این زمانه که پر از شره چجوری میتونی سالم باقی میبینی و گوزکوهی را سید کنی بهت بدن مثلا به عنوان پاداش مگر اینکه الله نصیبت بکنه و الله ترى معصوم و سالم نگه داره حالا این یک وجشه اما صحیح تر از اون شاید این وج باشه که تو نسخه های شما است و من لك بالسلامه في زمان یونالالعصمه إلا انعصمت در زمانی که الان هستیم چگه نه می در امان بمونیم از فتنه ها إلا این که الله ما را صالم نگه بداره الله هم اون را از فتنه ها و از مصیبت ها و بلاها سالم نگه داره چگه نه می خواهی صالم باقی ببونیم از فتنه ها مگر این که الله جلب علا الله جلب علا خودش بیاد تورا نجات بده و از شر فتنه ها و مصیبت ها داره. ولا تلبث بحين فيه ضيم يموت القلب إلا إن كُبِلْتَ ولا تلبث بحين فيه ضيم ضيم ظلم عدوانه ولا تلبث لبث نشاسنة ننشي إن جايك برا الظلم يموت القلب كم دارن شيء عن جايك تبح كارانه و كارانه قلبت بميره مثلاً كسي كنا بعد نهت كشته بود وحشيشة فت شو بود شو دور برياش همش وحشيشة بودن عالم چی نصیحتش کرد برو اونجا که آدمای خوبیان انسانهای خوبیان انسانهای خوبی انسان خوب انسانها خوب میکنن نجات میدن انسانهای بد انسانو بد میکنن یمیت القلم نشست و برخاست تو جای آلوده انسان آلوده میکنه نشست و برخاست با انسانای پست و ظالم انسانو ظالم میکنه الا این کوبلتا مگر اینکه رو ببندن دست دستپات با زنجیر ببندن خودشون میشیدن یه گوش مشروب بنوشن بهت ندن در این صورت شاید نجات پیدا بکنی تصفات بسته بشه که نتونین خطایی را انجام بدی و مرتکب خطایی بشی جایی که فتنه هست فساد هست ظلم هست اونجا به خود جرعت نده که پاتو اونجا بگذاری وشدار و غرب فتغرب و فیه خیر و غرب و غرب فالغریب و نفاق و غرب فتغرب و فیه خیر و شرق انبریق که قد شرقت و غرب فتغرب فیه خیر همونطور که الله جل وعلا گفتیم در قران میگوید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما كثيرا وسع قدم بردار مثل اون شخصی که 99 تا و 100 تا بد کشته بود قدم برداشت و الله نجاتش داد از عذابش او را بخشید باوجه که 100 تا را کشته بود قدم برداشت به سوی توبه قدم برداشت و برو به غرب و تقرب هم قدم برداشتت به سوی غرب برای نجات نفسك درش خير هست برات وغرب فالغريب له نفاق به همون تقريبا معناه ميشه وغرب فالغريب اون كسي كه غريبه اون كسي لله قدم برمی داره ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه همون سعات نفاق يعني راه مسلك براش باز ميشه الله راه براش آسوده ميكونه وغرب فالتغرب في خير وغرب یا وغرب والغريب له نفا غريب رش الله جلب علاه روح خیر رو باز میکنه آسون میکنه مادامی که قدمش لله باشه و من یهاجر فی سبیل الله باشه و شرق یا غرب نتونی سیبری برو به شرق این بریقی که قد شرقت. هر که آب و آزوکه هم نداشته باشی دینت مهمتر از چیه اون آبی که تو گلیت گیر بکنه بهش میگن شرق شرق آب تو گلیت گیر کرده شرق برو به شرق هرچن از اون تشنگی شاید آب دهنتو قورت بیدی تو گلیل گیری بکنه از تشنگی نترس قدم بردار خاطر نجات خودت خاطر کسب علم طلب علم نترس با همت باش ولو فوق الامیری تکونو فيها سمو و ارتفاعا کنت انت ولو فوق الامیری تکونو فيها ولو جای دیگه هم میگه فلیس زهدو في الدنيا خمولا لانت به الامیرو انزهدتا زهد تنبلی و بیکاری نیست در دنیا زهد و ورع یعنی قناعت بروزی اگر انسان قانعی باشی تو امیری تو سربلندی دنیا را در قلب خود جا نده ولو فوق الامير تكون فيها سمو و ارتفاعا كنت انت مثال عمر بن عبد العزيز اینجا علماء میزنند در بحث زهد خلیفه بود ملک خلافت اموی ها به دستش بود هیچ خلافتی جز خلافت بنی امیه نبود حاکم عادل عمر بن عبد العزيز ولیکن روی حسیر میخوابید ولیکن منزل کوچیکی داشت نه قصری بلند و برپا شب به فقرا سر میزد مستمندان بعد از عمر بن خطاب میگن اون کسی که منهج عمر بن خطاب رو زندگیش بود عمر بن عبد عزیز بود راهرو راه خلفای راشدین بود بعضی از جز خلفای راشدین حسابش میکنن میگن ششم این بوده بعضی میگن پنجم این بوده مثلا که خلفای راشدین رو را میگیره در خلافتش پشت به دنیا میده خلیفه بود بلیکن هیچ مالی نداشت ثروتی نداشت ملک بنی امیه به دستش بود بیت المال به دستش بود ولی خودش هیچ بهره ای نمی برد این مثال در زهده ولی فوق الامیر تكون فيه هر بالاتر از امیر باشی یعنی خلیفه باشی عمر عبد عزیزم باشه سمو و ارتفاع یعنی رتبه و منزلتت بالاتر از یک امیر هم بخواد باشه میخواد پادشاه باشی حاکم باشی خلیفه باشی کنت، انت خودت باش تو میتونی سر بشی با دینت نه با امالت. اون مال تو عزیز نمیکنه. قبل از عمر عزیز خیلی از خلفا بودن از بنی اومیه ولی یادی و نامی از اونها نیست اون, نیس. اون چنانچه چن نام عمر عبدالعزیزه اون چه که نام عمر عبدالعزیز را بلند کرد برخلاف دیگر بنی اومیه چی بود؟ دین و ورع زهدش بقناعتش و علمش حلم تو را سر بلند میکنه ما فوق اون امارتت اون قلم رویت فا این فارقتها و خرجت منها الى دار فإن فارقتها، أجلت دنيا بري بميري وخرجت منها خارج يا زنيا دنيا إلى دار السلام قبض الروح بشي فمسيرة بسيئة بهش بشي دار السلام بهش فقد سلمت انجاه كدر امان مندي از عذاب و خشب الهي وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت وان اكرمتها او كرمتها ونظرت فيها او منها دنيا را عزيز شمور دي بدل الدوس شوت عزيز شد شيرين شد الدنيا حلوة خاضرة شيرين شد شيرين ما دنيا زين للناس حب الشهوات ونظرت فيها ومدي دي دل التمع بس بدنيا دل بس بدنيا تمعكار شدي بمال الدنيا وثروه الدنيا دنبال این ماشین و ماشین لاكرام او باجلال فنفسك قد اهنت امدي بعزت نگاه دنیا كردي خودت را اهانت كردي خودت را حقير كردي دنيا حقيره خست اين حقيرت مشيت عزيز بشه خودت حقير شدي و خودت را حقير جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي افضل ما امتثلته جمعت لك النصائح ان نصيحتها رو برات جمعتهم مين بيت حذفيات انتهائيه يا 109 يا 111 في بعض النسخه جمعت لك النصائح جمعتهم برات النصيحتها فامتثلها امتثال بين نصيحتها عمل فامتثلها حياتك ترتلي عمرك فهي افضل ما امتثلت ان بهتن شيء اسك تو تدري بيش غوشميدي بين نصيحتك عمل وطولت العتابه وزدت فيه خیلی سر زدن شد کردم نه ابو ساخر می می خير نصیحتت کردم وزدت فيه و خلا زیاد گفتم زیاد گویی کردم یعنی خودمو میگم ببخشید خیلی وقتت گرفتم ببخشید من بعد حلالیت طلبم روزه وقتتون گرفتم با این 115 تا به حلال من كنيد وقتتون گرفتيم و اكراممون كرديد به با اون وقته كه به الله خير الله المستع يغفر الله لنا و لكم العتاب بمباسد 115 تا بيت ميگه وقتتون گرفتن من چي بگم بس با دوار 113 ساعتي كه اينجا شما را نگاه العتاب و فيه لأنك في البطالة قد اطلت ميگه چون ميبینم دل سوزتان ميبینم كه وقتت بي بهودگي داره میره به به بازی داری میره و اونم زیاده روی داری میکنی در اسراف داری میکنی در بیکاری و تنبلی لانکه فی البطانت خد اطلت یعنی زیاده روی داری میکنی در اون بیکاری و در بیخیالی زیادی دیگه بیخیال شدی مجبورم وقتت رو بگیرم با این نصیحت ها من نمیگم ما این البیری میگه بعد میگه و لا یغرور که تقصیری و در نسخه های فلا تاخد به تقصیری و ولا لا یغرور که تقصیری نگاه من نکن با اون تقصیرم او فلا تا خود به تقصیری اگر من تقصیری کتایی دارم اگر من جایم اشتبازم سرزده که میزنه دوچار سهبی اشتبازی شدم فخود به وسیعتی تو وسیعت من این نصیحت ها را بگید این رشد اگر دنبال رشد خودتی اگر دنبال رشد دنبال کمالی دنبال تمامی دنبال اصلاح نفس خودتی وقد اردفتوها ت ودار بعضا جسدها ستا حسانا وكانت قبل ذا مئة وقد اردفتها تسعا ان أبياترة نهتا زبا وقبلت ان نهتا وكانت قبل ذا مئة قبل از ان ساد وششتا بوت وششتا محل اتفاقه ولكن وقد اردفتها تسعا يا ستا ساد بيته يا تا How many of you have a house? A house of 112. Then there is a house of 6. When you have a house of 6, and before that, there were 6. Then I have a house of 112 and 115. This house is the house of 112. And you have a house of the Holy Spirit. This house is the house of the house. رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم بب ما أنتوا سيم يكونونك الله صلى الله عليه وسلم بعترش عتريك ريماش عتباعش وبيروانش وخانوادش وخاندانش برونهالسلوات بفرستيم زمانك يادي عزونها مشي اللهم صل على محمد وعلى علي محمد وصحبه اجمعين سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمد وصل على محمد وعلى علي محمد